یه کسی بگید اینجای می اشاره بکنم چون درس سازندگی اخلاقی ایمانی هم خیلی داره خدمت امام صادق علیه السلام رسید ارز که یا پرسول الله محدی کی ظهور میکنه اولا زمان ما صادق میشون میده که مسئله مهدی در دوران خمی اینه مطرح بوده امام علیه السلام فرمودن که وقتی در دوران نوح فشار زیاد شد مشکلات بر امت نوح زیاد شد اومدم تیش ازت نوح گفتن یا نبی الله دعا کن خدا پره رو شد ما گرفتاریم توی این دلاغی رو افتادیم حضرت نوح دعا کن نازل شد یا نبی الله به این تیروبانت بگوشه برن خرما بکارن امتحان دیدیم اینها گفتن ما زیر چنگال ستم ظالمین گرفتاریم میدیم پره جازم بشو اینجور کشو ورزی بکنم در رفتن یه عدد ثابت قدم مونده گفتن اگر ایمان رو به نوح داریم پیغمبر خداست پیغمبر خدا بیوده در چاش خرما رو کاشته خرما اومد بالا و چاش شده اوندا هم طولانی بودی خود نوح 950 سال تبلیغش بوده تا به طوفان رسیده یا 1000 سال به تصریری ندارم گفتن خب حالا چه بکنیم باز نوح دار کرد و وحی نازل شد بگو این خرمایی که این درخت‌ها داده بخورن حساشو بکنن تا سبار. هر بار یه اجاره رفتن یه اجاره رفتن یه اجاره رفتن بار صد بود خب همه چه بکنی ندا اومد بگو درختها رو ببرن با چوب شروع کردن کشی ساختن این دفعه دیگه خیالو ریختن یابون خوشجوش کشاورزیمون تموم شد حالا ما رو به نجیالی نشکل کرده نو بابا ول کنیم بریم دنبال کارمون رفتن ثابت قدم ها گفتن آقا امتحان افسا بمانید کشتی رو ساختن رد می شدم از کنار کشتی روایت داره ما کارشون می‌کردن اما مواظب باشید غرق نشیدا حالا تو کشتی می کشتی می‌سازن نو پیغمبر آرام یاران نوح هم ثابت قدم آرام باش خوش بدید صحبت بزنید. ما رو مسخره کنین اما ایمانمون ما رو به جای دیگه متصل کرده خاطرجم وقتی کشتی آماده شد این ایده اندکی که مونده بودن کو سوار کشتی بشینش چش. رفتن تو کشتی خدا امسد آب از بالا و پایی رو شید بالا این اده نجات یافتن همه در شد امام صادق علیه السلام فرمود ولاخه برای امت آخرالزمان نسبت به ظهور امام زمان همچه امتحان رو هر بار یه اده میرن هر بار یه اده اما اونایی که ایمان به مهدی دارن اونایی که اعتقاد به امام زمان دارن اونایی که غلبشونو با امام الزمان ارتباط دادن اونایی که مثل اهل بیتی و مثل سفینه نوهن من رکبه ها نجا و من تخلط آنها حلک رو دارن اونها تخلط نمی کنن. در کشتی نجا و هم تمسط از نیجوین ازا اینها رست دارن این اجازه بدی تو فرانتیزی در دو کنم برگردم با آیه عرض می کنم از زبان حمامون یاد اگه اون مردم مطلق میشیدن نوح کنارشون بود دلگرمی میداد اگه خوش بهشون میدادن وحی نازل میشد دلگرمیشون میکرد. ما میدانیم تو واسطه سفه خدا و خلقی با افاظت با انایت با نگاهی که گوشه چشمی که عاشق و پیغانی سازد